بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خدا بند بخشنده ی مهربانه والعاف سوگان به آف اینن الانسان لذی قصد بی انسان ها همه در جیانان اینن إلا الانسان صالحات و, و بالصبر مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند و یکدیگر را به حق سپارش کرده و یکدیگر را به شکیباوری و با استقامت توکل اند